اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آمین به نام خداوند بخشنده بخشایشگر آمین انزل الكتاب من الله العزيز العليم. این کتابی که از سوی خداوند قادر و دانا نازل شده است. آفرض ذنب و قابل التوب شدید العقاب الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. خداوندی که آمرزنده گناه، پذیرنده توبه، دارای مجازات سخت و صاحب نعمت فراوان است هیچ معبودی جز او نیست و بازگشت همه شما تنها به سوی اوست ما يجادلون في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرنك تقلبهم في البلاد تنها کسانی در آیات ما مجادله میکنند که کافر شده اند پس مبادا رفت و آمد آنان در شهرها تو را بفریبد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. و جادلو بالباقل لیدحضو به الحق فأخذتهم فکیس كان عقاب پیش از آنها قوم نوح و اقوامی که بعد از ایشان بودند پیام برانشان را تکسید کردند و هر امتی در پی آن بود که توطعه کند و پیام برش را بگیرد و آزار دهد و برای مهد حق به مجادله باطل دست زند اما من آنها را گرفتم و سخت مجازات کردم ببین که مجازات من چگونه بود و كذلك حق ربك على الذين كفروا ان لهم اصحاب النار. و این گونه فرمان پروردگارت درباره کسانی که کافر شدند مسلم شده که آنها همه اهل آکشند. اند <تصفيق> الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ویستغفرون للذین آمنون ربنا وسیعت كل شیع رحمتا و علما فغفر فغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیل عذاب الجحیم فرشتگانی که حاملان ارشند و آنها که گردا گرد آن تسبیح و حمد پروردگارشان را میگویند. و به او ایمان دارند و برای مؤمنان استقفار می کنند و میگویند پروردگارا رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته است پس کسانی را که توبه کرده و راه تو را پیروی می کنند و آنان را از عذاب دوزخ نگاه دار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 آنها را در باغهای جاویدان بهشت که به آنها وعد ای وارد کن همچنین از پدران و همسران و فرزندانشان هر کدام که صالح بودند که تو تواناب و حکیمی وقیم السیعات و منطق فقد رحمته و هو الفوز العظیم و آنان را از بدیها نگاه دار و هر کس را در آن روز از بدیها نگاه مشمول رحمتت از ای و این است همان رستگاری عظیم ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون اذ تدعون الى را فتكفرون كثاني كافر شدند روز قیامت صدا میزنند که عداوت و خشم خداوند نسبت به شما از عداوت و خشم خودتان نسبت به خودتان بیشتر است چرا که به سوی ایمان دعوت می شدید ولی انکار می کردید ربنا امدت نثنتین و احییت نثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ آنها می گویند پربرگارا ما را دو بار میراندی و دوبار زنده کردی اکنون به گناهان خود معترفیم آیا راهی برای خارج شدن از دوزخ وجود دارد ذالکوم باننه اذا دعی الله وحده کثرتم و ان یشرک به تؤمن فالحکم لله العلی این به خاطر آن است که وقتی خداوند به یگانگی خوانده خانده می انکار می کردید و اگر برای او همتایی می پنداشتند ایمان می آوردید اکنون داوری مخصوص خداوند بلند مرتبه و بزرگ است وَالَّذِي وَيُنَزِّلُ السَّمَاءِ رِزْقًا و يتذكر إلا من او کسیست که آیات خود را به شما نشان می و از آسمان برای شما روزی با ارزشی میفرستد تنها کسانی متذکر این حقایق میشوند که به سوی خدا باز می گردند الله مخلصین له الدین ولو کریه الكافرون تنها خدا را بخوانید و دین خود را برای او خالص کنید هرچند کافران ناخشنود باشند رفیع الدرجات ذو العرش يلق روح من أمره على من یشاء من, من عباده لينظر يوم التلاق درجات بندگان صالح را بالا میبرد. او صاحب عرش است روح مقدس را به فرمانش بر هر کس از بندگانش که بخواهد القا کند تا مردم را از روز ملاقات بیندهد یومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء اليوم لله لله روزی که همه آنان آشکار می شوند و چیزی از آنها بر خدا پنهان نخواهد ماند و گفته می شود حکومت امروز برای کیست؟ برای خداوند یک و قهار است. اليوم تجزا كل نفس بما كسبت اليوم الله سريع امروز هر کس در برابر کاری که انجام داده است پاداش داده می شود امروز هیچ ظلمی نیست. خداوند سریع الحساب است و انذرهم یوم الازفت اذ القلوب الحناجر کاظمین مال الظالمین من حمیم ولا شفیعی طاع و انها را از روز نزدیک بترسند هنگامی که از شدت وحشت دلها به گلوگاه میرسد و تمامی وجود آنها مملو از اندوه می گردد. برای سهم کاران دوستی وجود ندارد و نه شفاعت کننده ای که شفاعتش پذیرفته شود او چشمهایی را که به خیانت می گردد و آنچرا سینه ها پنهان می دارند می داند. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير خداوند به حق داوری میکند و معبودهایی را که غیر از او میخوانند هیچ گونه داوری ندارند خداوند شناوا و بیناست اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبت الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوه واثرا في الارض فأخذهم فَاَخَذَهُمُ الله بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللّٰهِ مِن وَاقٍ آیا آنها روی زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بود آنها در قدرت و ایجاد آثار مهم در زمین از اینها برتر بودند ولی خداوند ایشان را به گناهانشان گرفت و در برابر عذاب او مدافعی نداشتند ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبینات فكفروا فأخذهم الله إنه قوی شديد العقاب برای آن بود که پیام پیوسته با دلایل روشن به سراغشان می آمدند ولی آنها انکار می کردند. خداوند هم آنان را گرفت که او قوی و مجازاتش شدید است ارسلنا موسى مبین ما موسی را با آیات خود و دلیل روشن فرستادیم الی فرعون و هامان و قارون فقالو ساحرون کذاب به سوی فرعون و هامان و قارون ولی آنها گفتند او ساحری بسیار دروغگوست فلما بین حق من عندنا قالوا قالوا قتلوا ابنا الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال بہنگامی چه حق را از سوی ما برای آنها آورد گفتند تسران کسانی را که با موسا ایمان آورده اند بکشید و زنانشان را برای اصارت و خدمت زنده بگذارید اما نقشه کافران جز در گمراهی نیست و قال فرعون اقتل موسى اینی اخاف این یبدی لدینکم او این یظهر فی الارض الفساد و فرعون گفت بگذارید موسی را بکشم و او پروردگارش را بخواند تا نجاتش نهد زیرا من می ترسم که آین شما را دیگرگون سازد و یا در این سرزمین فساد برپا کند و قال موسى انني عذت بربي و ربكم من كل متكبر لا يؤمن بیوم الحساب موسی گفت من به پروردگارم و پروردگار شما پناه میبرم از هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی آبرم.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 وَإِن يَكُن كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُن صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابَ وَمَرَدَّ مُؤْمِنِي عَز آل فِرْعَوْن که ایمان خود را پنهان می‌داشت گفت آیا می‌خواهید مردی را بکشید به خاطر اینکه می‌گوید پروردگار من الله هست در حالی که دلایل روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آورده است اگر دروغگو باشد دروغش دامن خودش را خواهد گرفت و اگر راستگو باشد بعضی از عذابهایی را که وعده می‌دهد به شما خواهد رسید خداوند کسی را که کار و بسیار دروغ گوست هدایت نمی کند یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین في الارض فمن ينصرنا, فمن ينصرنا من بس الله إن جاءنا ای قوم من امروز حکومت ازان شماست و در این سرزمین پیروزید اگر عذاب خدا به سراغ ما آید چه کسی ما را یاری خواهد کرد فرعون گفت من جزان چرا معتقدم به شما ارائه نمی دهم و شما را جز به راه صحیح راه نمایی نمی کنم دستور همان قتل موساست و قال الذی آمن يا قوم اینی اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب آن مرد با ایمان گفت ای قوم من من بر شما از روزی همانند روز عذاب اقوام پیشین بی ناکم مثل دائب قوم نوح و عاد و ثمود و الذين من بعدهم وما الله يريد ظلم للعباد و از عادتی همچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنان بودند می‌ترسم و خداوند ظلم و ستمی بر بندگانش نمیخواهد. ای قوم من، اخاف علیکم یوم ای قوم، من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را صدا میزنند، بیمناکم. یوم تتلون مدبرین ما من الله من عاصم. و من, يضلل الله فما له من هاد. همان روزی که روی میگردانید و فرار میکنید اما هیچ پناهگاهی در برابر عذاب خداوند برای شما نیست و هر کس را خداوند به خاطر اعمالش گمراه سازد هدایت کننده ای برای او نیست. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبيانات فمازلتم فمازلتم في شك من ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لي يبعث الله من بعده رسولا پیش از این یوسف دلایل روشن برای شما آورد، ولی شما همچنان در آنچه او برای شما آورده بود تردید داشتید. تا زمانی که از دنیا رفت گفتید، هرگز خداوند بعد از او پیام بری مبعوث نخواهد کرد. این گونه خداوند هر اسراف کار تردید کننده ایران گمراء می‌سازد. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر عند الله و عنده الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار همانها که در آیات خدا بیان که دلیلی برایشان آمده باشد به مجادله برمیخیزند. این کارشان خشم عظیمی نزد خداوند و نزد آنان که ایمان آورده اند به بار می اینگونه خداوند بر دل هر متکبر جباری مهر می نهد. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلی ابلغ الاسباب فرعون گفت ای هامان برای من بنای مرتفعی بساز شاید به وسایلی دست اسباب اسلار السماوات فاتطلع الى اله موسى و اني لاظنه كاذبا وكذلك زین لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وسایل السعود به آسمانها تا از خدای موسا آگاه شوند هچن گمان میکنم او دروغگو باشد این چنین اعمال بد فرعون در نظرش آراست جلوه کرد و از راه حق بازداشته شد و توطعه فرعون جزب نابودی نمی انجامد و قال يا قوم کسی که از قوم فرعون ایمان آورده بود گفت ای قوم از من پیروی کنید تا شما را به راه درست هدایت کنم یا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار ای قوم من این زندگی دنیا تنها متاع زودگذری است و آخرت سرای همیشگیست. من عمل سیئتا فلا یجزا إلا مثلها و من عمل صالحا من ذكر او انفا و هو مؤمن فأولائک فأولائک الجنة يرزقون فيها بغير حساب هرکس بدی کند جز بمانند آن کیفر داده نمی شود ولی هرکس کار شایسته ای انجام دهد خواه مرد یا زن در حالی که مؤمن باشد آنها وارد بهشت می و در آن روزی بی حسابی به آنها داده خواهد شد. ويا یا قوم مالی ادعوكم الى النجات و تدعوننی الى النار ای قوم من چرا من شما را به سوی نجات دعوت می کنم اما شما مرا به سوی آتش فرا می خانید تدعوننی لأكفر بالله و به ما ليس لی لي به علم و انا إلى مرا دعوت میکنید که به خداوند یگانه کافر شوم و همتایی که به آن علم ندارم برای او قرار دهم در حالی که من شما را به سوی خداوند عزیز قفار دعوت میکنم لا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَ رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هم أَصْحَابُ النَّارُ قطعاً آن مرا آن نه دعوت و حاکمیتی در دنیا دارد و نه در آخرت و تنها بازگشت ما در قیامت به سوی خداست و مصرفان اهل آتشند فستذکرون ما اقول لکم و افویض امری الى الله این الله و به زودی آنچه را به شما میگویم به خاطر خواهید آورد من کار خود را به خدا میگذارم که خداوند نسبت به بندگانش بیناست فوقاه الله سیئیات ما مکر و حاق و حاق بی آل فرعون سوء او را از نقشه های سوء آنها نگه داشت و عذاب شدید بر آل فرعون وارد شد اندارو یعرضون علیها غدوا و عشیه وَيَوْمَ تقوم السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فرعون أَشَدَّ الْعَذَابِ عَذَابُ آنها آتش است که هر صبح خوشام بر آن عرضه میشوند و روزی که قیامت برپا شود میفرماید آل فرعون را در سخت ترین عذاب ها وارد کن وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فهل انتم مغنون عن نصیبا من النار به خاطر بیاور هنگامی را که در آتش دوزخ با هم محاجه می کنند به مستقبران میگویند ما پیرو شما بودیم آیا شما امروز سهمی از آتش را به جای ما پذیرامی شوید قال الذين استكبروا اننا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد مستكبران میگویند ما همگی در آن هستیم زیرا خداوند در میان بندگانش به عدالت حکم کرده است وقال الَّذِينَ فِي النار لِخَزَنَةِ جهنم دْعُونَ ربكم يُخَفِّفْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمَ مِنَ الْعَذَابِ و آنها که در آتشند به مأموران دوزخ میگویند از پروردگارتان بخواهید یک روز عذاب را از ما بردارد قالوا اولم تكو تأتیكم رسلكم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین إلا فی ضلال آنها میگویند آیا یانبران شما دلایل روشن برایتان نیاوردند میگویند چرا آنها میگویند، پس هر که میخواهید خدا را بخوانید، ولی دعاي کافران به جایی نمیرسد و جز در زلالت نیست. اینالله لننصر رسولنا والذین آمنوا آمین فی الحیات الدنیا ووم الحیات الدنیا و يقوم الأشهاد و يوم يقوم الأشهاد ما به یقین پیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده در زندگی دنیا و در آخرت روزی که گواهان به پا میخیزند یاری میدهیم ولهم ولهم روزی که عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان نمیبخشد و لعنت خدا برای آنها و خانه و جایگاه بد نیز برای آنان است و لقد آتینا و اورثنا بنی اسرائیل الكتاب و ما به موسا هدایت بخشیدیم و بنی اسرائیل را وارسان کتاب قرار دادیم کتابی که <تصفيق> مایه هدایت و تذکر برای صاحبان عقل بود فصبر این وعد الله حق و استغفر لذنبک و سبیح و سبیح بحمد ربک بالعشی <تصفيق> پس ای پیامبر سبر و شکی با ای پیشه کن که وعده خدا حق است و برای گناهت استقفار کن و هر صبح و شام تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آورد. این الَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي <تصفيق> آیَاتِ الله بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ بی غیر سلطان اتاهم این فی صدورهم الا که برم با هم بی بالغیه بالله اینهو هو سمیع البصیر کسانی که در آیات خداوند بدون دلیلی که برای آنها آمده باشد ستیز جویی می در سینه هایشان فقط تکبر و قرور است و هرگز به خواسته خود نخواهند رسید پس به خدا پناه بر که او شنوا و بیناست لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن, ولكن اكثر الناس لا يعلمون آفرینش آسمان ها و زمین از آفرینش انسان ها مهم تر است ولی بیشتر مردم نمی دانند و ما یستوی الاعمى والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء قلیلا ما تتذكرون هرگز نابینا و بینا یکسان نیستند همچنین کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند با بدکاران یکسان نخواهند بود اما کمتر متذکر میشوید ان الساعه لاتیه لا ریب فیها ولكن, ولكن اكثر لا يؤمنون روز قیامت به یقین آمدنی است و شکی در آن نیست ولی اکثر مردم ایمان نمی آبرند. و قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين پروردگار شما گفته است مرا بخانید تا دعای شما را بپذیرم کسانی که از عبادت من تکبر می‌ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ می‌شوند. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولنها رمضرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن ولكن الناس لا يشكرون. خداوند کسیست که شب را برای شما آفرید تا در آن بیاسایید و روز را روشنی بخش قرار داد خداوند نسبت به مردم صاحب فضل و کرم است ولی بیشتر مردم شکل گذاری نمیکنند. ذلک الله ربکم خالق كل شیء الا اله الا هو فان این است خداوند پروردگار شما که آفریننده همه چیز است هیچ معبودی جز او نیست با این حال چگونه از راه حق منحرف می‌شوید كذلك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. این چون این کسانی که آیات خدا را انکار می کردند از راه راست منحرف می شوند الله الذي جعل لكم الْأَرْضَ قرارا والسماء بناءا وصوركم و صورکم ف احسن صورکم و رزقکم من الطیبات ذالکم الله ربکم ف الله رب العالمین خداوند کسیست که زمین را برای شما جایگاه امن و آرامش قرار داد و آسمان را همچون سقفی بالای سرتان و شما را صورتگری کرد و صورتتان را نیکو آفرید و از چیزهایی پاکیزه به شما روزی داد این است خداوند پروردگار شما جابید و پربرکت است خداوندی که پروردگار عالمیان است هوالحی لا اله الا هو فدعوه مخلصین له الدین الحمدلله رب العالمین زنده واقعی اوست معبودی جز او نیست پس او را بخوانید، در حالی که دین خود را برای او خالص کرده اید ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است قل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما لما جاءني البينات امر ربي وامرت أن اسلم لرب العالمين بگو من نهي شده ام از این که معبودهای را که شما غیر از خدا میخوانید بپرستم چون دلایل روشن از جانب پروردگارم برای من آمده است و مأمورم که تنها در برابر پروردگار عالمیان تسلیم باشم هو الذی خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من علاقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبيله أشدكم ثم لتبيله أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتواف من قبل ولی تبلغو اجلا مسمن ولعلكم او کسیست که شما را از خاک آفرید سپس از نطفه سپس از علقه سپس شما را به صورت طفلی از شکم مادر بیرون می بعد به مرحله کمال قوت خود میرسید. و بعد از آن پیر میشوید و در این میان گروهی از شما پیش از رسیدن به این مرحله می میرند و در نهایت به سرآمد عمر خود می رسید و شاید تعقل کنید هو الَّذی و يُمِیت فَإِذَا قضا او کسی است که زنده می کند و می میراند و هنگامی که کاری را مقرر کند تنها به آن میگوید موجود باش بیدرنگ موجود می شود آیا ندیدی کسانی را که در آیات خدا مجادله می کنند چگونه از راه حق منحرف می شوندد؟ و بما به رسولنا فسوف همان کسانی که کتاب آسمانی و آنچه رسولان خود را بدان فرستاده این تکذیب کردند اما به زودی نتیجه کار خود را میدانند؟ ایدی فی و السلاسلو در دران هنگام که قل و زنجیرها گردن آنان قرار گرفته و آنها را می کشند فی الحمیم ثم فی و در آب جوشان وارد می کنند. سپس در آتش دوزخ افروخته می شوند مقل لهم أنما كنتم تشركون. سپس به آنها گفته میشود كجایند آنچه را همتای خدا قرار میدادید من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين همان معبود هایی را که جز خدا پرستش می کردید. آنها می گویند، همه از نظر ما پنهان و گم شدند، بلکه ما اصلا پیش از این چیزی را پرستش نمی کردیم. این گونه خداوند کافران را گمراه راه می سازد. ذلكم بما کنتم تفرحون فی الارض بغير الحق و بما تمرحون این عذاب به خاطر است که به ناحق در زمین شادی می کردید و از روی قرور و مستی به خوشحالی می پرداختید ابواب جهنم فيها فبئس از درهای جهنم وارد چوید و جاودان در آن بمانید و چه بد است جایگاه متکبران فصبر این وعد الله حق فَإِن مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْنَ تَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرُجَعُونَ پس ای پیامبر صبر کن که وعده خدا حق است و هرگاه قسمتی از مجازات هایی را که به آنها وعده داده ایم در حال حیاتت به تو ارائه دهیم یا تو را پیش از آن از دنیا ببریم مهم نیست چرا که همه آنان را تنها به سوی ما باز می گردانند وَلَقَدْ اَرُسَلَّا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ و من هم من لم نقصص عليک و ما کان لرسول این یعطیه بی آیت ایلا الله فا اذا جاء امر الله قضی بالحق و هنالك المبطلون ما پیش از تو رسولانی فرستادیم سرگزشت گروهی از آنان را برای تو باز گفته و گروهی را برای تو بازگو نکرده ایم و هیچ پیامبری حق نداشت ای جز به فرمان خدا بیاورد و هنگامی که فرمان خداوند صادر شود به حق داوری خواهد شد و آنجا اهل باطل زیان خواهند کرد الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون خداوند کسی است که چهار پایان را برای شما آفرید تا بعضی را سوار شوید و از بعضی تقریع کنید ولکم فیها منافع ولتبلغوا علیها حاجهتا فی صدورکم وعلیها و وعلی و و الفلك تحملون و برای شما در آنها منافع بسیاری است تا به وسیله آنها به مقصدی که در دل دارید برسید و بر آنها و بر کشتی ها سوار می و آیات الله او آیاتش را همواره به شما نشان می دهد پس کدام یک از آیات او را انکار می کنید؟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 آیا روی زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چه شد همانها که نفراتشان از اینها بیشتر و نیرو و آثارشان در زمین فزونتر بود اما هرگز آن که را به دست میآوردند نتوانست آنها را بی نیاز سازد فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا هنگامی که رسولانشان دلایل روشن برای آنان آوردند به دانشی که خود داشتند خوشحال بودند و غیر آن را هیچ میشمردند ولی آنچه را از عذاب به تمسخر می آنان را فرا گرفت فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا و بما كنا به مشرکین انگامی که عذاب شدید ما را دیدند گفتند همکنون به خداوند یگانه ایمان آوردیم و به معبودهایی که هم تای او می شمردیم کافر شدیم فلم یکو ینفعهم ایمالهم لما رأو بأسنا سنت اللهیلتی قد خلدتی عبادیه اما هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند ایمانشان برای آنها سودی نداشت این سنت خداوند است که همواره در میان بندگانش اجرا شده و آنجا کافران زیانکار شدند